کتاب افسانه های جان روایت سمد بهرنگی و بهروز تبریزی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افثانه ی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده گاسمن علی این داستان گل خندان یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود مرد ماهیگیری بود که سالی به دوازده ماه تور مینداخت و ماهی شکار میکرد با فروش ماهی زندگیش میگذشت روزی تورش رو به دریا انداخت یکم صبر کرد دید تورش سنگین شده با خوشحالی اونو بالا کشید قرباقه درشتی توی تور نشسته بود با چشمای دریدهش به ماهیگیر نگاه کرد ماهیگیر قورباغه رو پرت کرد به دریا باز تور انداخت باز همون غورباغه به تورش خورد گرباغه رو دوباره توی دریا پرت کرد دفعه سوم تور انداخت باز همون قورباغه به تورش خورد با خودش گفت که حتما امروز قسمت من همینه دیگه اون وقت گرباغه رو برداشت و به خونه برد دلش کرد توی حیات ماهی گیرون شب گرست نخابید فردا صبح زود رفت پی کار و بیش اما از که خسته و کوفته به خونه برگشت دید خونه آب و جارو شده چایی دم کشید و شام حاضره خیلی تعجب کرد اما هرچقدر فکر کرد عقلش به جایی نرسید شامشو خورد و خوابید. پردا اس دوباره از سر کار برگشت. دید مثل دیروز همه جا تر و تمیز و غذا حاضره. باز هرچقدر فکر کرد عقلش به جایی نرسید. قورباغه توی حیاط برای خودش ول میگشت. روز سوم ماهیگیر کنار دریا نرفت. پشت پرده قایم شد که ته و توی قضیه رو دربیاره. نزدیکیای زرد دید پوستش پوستشو انداخته و تبدیل به یه دختر خوشگل شده چادرش رو به کمر زده و داره خونه رو آب و جارو میکنه ماهیگیر یهو از پشت پرده بیرون اومد و گفت تو رو قسم میدم به اونی که منو تو رو خرد کرده دیگه توی جلد قرباقه نرو دختر جلد قرباقه رو دور انداخت و زن ماهیگیر شد مدتی گذشت روزی پادشاه با وزیرش به شکار اومده بود نزدیکی های خونه ماهیگیر که رسید، چشم پادشا به زن ماهیگیر افتاد. یه دل نه دل آشغش شد. اون وقت به وزیر گفت، وزیر مردم، تدبیر تو چیه؟ وزیر گفت، قبله عالم به سلامت، این زن شوهر داره. باید بهانهی پیدا کنیم، ماهیگیر رو بکشین. اون وقت میتونی زن اونو بگیری و به مراد دلت برسی. پادشاه رفت به دربار و دستور داد که ماهیگیر رو حاضر کند. ماهیگیر اومد. پادشاه گفت ماهیگیر شنیدم تو خیلی شجاعی. از تو میخوام هرچه زودتر برام انگور تازه چین که برگش هنوز روی خوشهاشه بیاری. اینم بدون اگه تا فردا انگور رو حاضر نکنی کشته میشی. ماهیگیر حالش گرفته شد و به خونه برگشت زنش پرسید چیه؟ چرا اینقدر ای؟ ماهیگیر ماجرا رو تعریف کرد و گفت نمیدونم پادشاه از جون من چی میخواد منو از کجا شناخته زنش خندید و گفت اینکه قصه نداره بعد به دلت راه نده همین حالا پاشو و برو کنار دریا جایی که منو گرفتی بگو ای خواهر ای گل خندان ای گل هایت خندان اگه خوابی بیدار شو خواهر اگه بیداری حرف بزن خواهر خواهرت گفته یه انگور تازه چیم به من بده ماه گیر راست اومد کنار دریا اصلا باورش نمیشد که دریای شور بتونه بهش انگور تازه تحویل بده به خودش میگفت عجب گیری افتادم آخه توی دریا انگور کجا بود؟ دریا آرون بود و داشت به روی آسمون میخندید. ماهیگیر حرفای زنش رو تکرار کرد. یه دید دریا موج زد و آب دوشقه شد. از توی اون دختر جوونی بیرون اومد که عین زن خودش بود. یه عالم انگور تازم توی دستاش. ماهیگیر تا چشمش به انگورا افتاد، از خوشحالی داد زد انگورا را از دختر قاپید و به طرف قصر رفت پادشاه از دیدن انگور تعجب کرد به وزیر نگاه کرد وزیرم با تعجب به پادشاه نگاه کرد گفت قبلی عالم به سلامت شاید ماهیگیر انگورا را از گلخونه خریده یا خودش توی خونه ی جوری نگه داشته بوده باید ازش چیزی بخویم که نتونه بیاره. پادرشا دوباره ماهیگی رو صدا زد. همونطوری که وزیر یادش داده بود گفت انگورات خیلی خوبن، خوشم اومد. معلوم میشه همونطوری که من گفته بودم شجایی. حالا برای هزار توپ پارچه میدم. باید تا فردا صبح برای تمام قشون من لباس بدوزیم و الا ام میکنم تو رو بکشن باز ماهیگیر سه هاش توی هم رفت زنش پرسید باز چه خبر شده ماهیگیر گفت این دفعه پادرشا گفته تا فردا صبح برای همه قشونش لباس دوخته تحویل بدم زن گفت قصه نخور این که کاری نداره همین الان پاشو برو کنار دریا و بگو ای خواهر ای گل خندان، ای گل هایت خندان اگر خوابی بیدار شد خواهر اگر بیداری حرف بزن خواهر خواهرت گفته تا رو دف بردار و بیا ماهیگیر راه افتاد اما توی دلش میگفت، عجب کاری پادشاه تا فردا برای قشونش لباس دوخته میخواد. این چه حرفیه آخه این چه کاریه دریا موج میزد، اما موجاش خیلی بزرگ نبود ماهیگیر تا رسید کنار دریا حرفای زنشو تکرار کرد باز آب دوشقه شد و همون دختر دیروزی با دف و تار بیرون اومد ماهیگیر دختر رو به خونه آورد خواهرها به ماهیگیر گفتن تو برو راحت بخواب دیگه کارید نباشه ماهیگی رفت زیر لحاف اما مگه خواب به چشمش میومد. اومد خوارا تا صبح زدن و رقصیدن مرد مرتب به خودش میپیچید که فردا جلوی چشم همه پادشاه سرم و از تنم جدا میکنه. اینا اصلا این خیالشون نیست چند دفعه خواست بلنج دفتا رو بگیر و بشکنه اما بعد فکر شاید کاری هم از دستشون بر بیاد صبح آفتاب تیغ نزده دو خواهر دست از زدن و رقصیدن کشیدن و زن ماهیگیر اومد پیش شوهرش گفت باشو برو گاری صدا کن لباس رو ببر ماهیگیر اول خیال کرد دستش انداخته اما وقتی چشماشو باز کرد و لباس ها رو دید از خوشحالی نمیدونست چیکار کنه فوری بلند شد و این ورانور لباس ها رو نگاه کرد دید حتی هاش هم انداخته خیلی خوشحال شد زودی رفت و یه گاری دمه در آورد و ها رو بار زد و را افتاد پادشاه هنوز توی خواب بود که ماهی گیر در قصر رو زد دو ساعت بعد که پادشاه لباسای دختر رو دید دهنش از تعجب باز مون وزیرم مثل پادشاه خیلی تعجب کرد هیچ کدوم نمیتونستن حرفی بزنه آخر سر وزیر گفت قبل یه عالم به سلامت شاید ماهیگیر همه خیاطای شهر رو جمع کرده و پول داده لباس براش دوختن باید ازش چیزی بخوایم که اصلا نتونه بیاره مثلا میگیم باید تا فردا بچه برای ما پیدا کنی که نافشو هنوز نباریده باشن اما بتونه با پادشاه قشنگ حرف بزنه. ماهگیر رو صدا زدن و دستور پادشاه رو گفتن. بیچاره ماهیگیر دیگه ناامید شد. به خودش گفت فردا حتما کشته میشم. آخه کی تا حالا دیده بچه تازه به دنیا اومده حرف بزنه؟ گرفته شد. ناراحت شد. به خونه برگشت. زنش پرسید جان باز چه خبری شده مایی گیر گفت این دفعه دیگه تو هم کاری ازت ساخته نیست پادشو از من بچه خواسته که نافش هنوز نبریده باشه و بتونه قشنگ باهاش حرف بزنه زن خندید و گفت این که کاری نداره فردستو به زود برو کنار دریا و بگو ای خواهر، ای گل خندان ای گل هایت خندان اگر خوابی بیدار شو، خواهر اگر بیداری حرف بزن. خواهر خواهرت گفته بچه نوزاد رو بده و بیار. مرد شب رو خوابید و صبح زود بلند شد رفت کنار دریا. دریا طوفانی بود. موجای بزرگ و سنگین به سنگای ساحل میخورد. مرد تا حرفای زنش رو تکرار کرد، گل خندان از میون موجا بیرون اومد و، بچه نوزادی که هنوز نافشون نبریده بودند مرد بچه رو گرفت و به قصر پادشاه اومد یکم شک برش داشته بود که نکنه بچه نتونه حرف بزنه پادشاه تا چشمش به بچه افتاد ازش پرسید بچه جان بگو ببینم برای من چه اتفاقی میافته. پادشاه مطمئن بود که بچه حرف نمیزنه اما یه دفعه بچه به حرف اومد و گفت: الانه آتیشی از توی آسمون توی تختت میافته و هورتی تو رو بالا می‌کشه.» تا این حرف از دهن بچه بیرون اومد، آتیش روی تخت پادشاه افتاد و همه چی سوخت. ماهیگیر نفس راحتی کشید و پی کارو رفت. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای افسان صوتی <مترجم> نشانی کانال تلگرامی T نقط M/ مهران T نقط me نشانی وبلاگ ما m -E -H r -A n d -O -U s t i